شاکر وقتداد پنجم رویسانانی 41. اگر از من بپرسید، میگویم درویش شدن توی خانقا آسان است. خب مگر کاری دارد. از صبح تا شب بنشین ورور ور دعا کن تسبیح بینداز، ذکر بگو. بچه بازی است. کار سخت شاگرد شدن است همه از سختی های درویش بودن دم میزنند اما نمیدانم چرا کسی درباره سختی هایی که ما سالک های بیچاره میکشیم حرفی نمیزند از روزی که به اینجا آمدم مثل سگ کار میکنم بعضی روزها آنقدر خسته میشوم که شب وقتی روی تشک میافتم از درد دست و پا خوابم نمیبرد اما کی اهمیت میدهد نه از کسی حرف آرامش بخشی شنیدم نه نگاه مهربانی دیدم هرقدر هم که کار بکنم به هیچ دردی نمیخورد. فکر نکنم حتی اسمم را بدانند طالب جاهل صدایم میزنند انگار اسم و رسم ندارم. پشت سرم هم پش پش کنان می گویند پسره نادان کلهویج. اما از همه اینها بدتر زیر دست آشیدده کار کردن است. این مرد توی سینه اش به جای قلب یک تکه سنگ دارد. اگر به جای آش پس شدن در خانقاه فرماندهی قشون مغل میشد حتما دبدبه و کبکبهای پیدا میکرد اگر روزی بشنوم که یک حرف خوش از دهانش درآمده همان موقع دست راستم را میبرم حتی شک دارم بلد باشد بخندد یک بار طاقتم تاق شد و از میداندار پرسیدم همه شاگردهایی هایی که به این خانقاه میآیند پیش از پوشیدن خرقه، باید مثل من از پس امتحانهای سخت آشچیدده دده بر بیایند. میداندار پوزخند زد و گفت، همشان نه، فقط آنهایی که مثل قاطر خامند. آنهایی که مثل قاطر خامند، ها؟ که اینطور چرا باید بیشتر از بقیه شاگردها سختی بکشم؟ یعنی نفس من از نفس آنها بدتر است؟ صبحها زودتر از همه بیدار میشونم از چشمه کوزه کوزه آب میآورم؟ بعد تنور را روشن می کنم؟ انقدر نان میپزم که تمام سر و صورتم دوده خالی می شود. پختن آش برای سبحانه هم وظیفه من است. آسان نیست. همه چیز را باید توی دیکای پنجاه نفری بپزی. دیکا آنقدر بزرگند که پنج نفر راحت میتوانند داخلشان بروند و خودشان را بشویند. خب، بعدش چه کسی دیکا را میساید و تمیز میکند؟ باز هم من. من اینجا هم ظرف هم رخت هم نظافتچی. آشچیدده هم از کله سهر تا بوغ سک دستور میدهد. کله هویج زمینها را دستمال بکش. پیشخانها را برق بینداز. پله ها را تمیز کن. حیات را جارو کن. برو هیزم بشکن. تخته را برق بینداز. قابلمه ها را بشور. رب بپس. نه. بادمجان خورد کن. نه. توی بادمجان ها را خالی کن. دلمه بپس. مواظب باش نمکش زیاد نباشد. کم هم نباشد. آنقدر باشد که تخم مرغ روی آب بیستد. اگر همه کارها را آنطور که میخواهد انجام ندهم آشیدده جوش می آورد هرچه دم دستش باشد به طرفم پرت می کند یالا اگر کاری نداری از اول شروع کن برق بینداز حالا انگار همینها بس نبوده دستور می دهد هر کاری که می کنم پشت سر هم دعا هم بخوانم. با صدای بلند می خانم. تا آشچی دده راحت تر زیر نظرم داشته باشد. وای به حالم اگر یک کلمه جا بیندازم. می افتد به جانم. اینطوری هر روز خدا من بدبخت از یک طرف دعا از بر کنم. از طرف دیگر هم مثل چی کار می کنم. اگر بر مشکلات مطبخ قلبه بکنم در این راه سریعتر به کمال میرسم. این را آشیدده میگوید. دیگ اگر اطرافش آتش نباشد به جوش می آید نخود ممکن است بپزد تو هم درست همانطور. توی آتش پف پف کنان می جوشی و می حرف را نگاه کن ترا خدا مگر من نخودم یک بار نتوانستم تحمل کنم و پرسیدم خب این امتحان آتشین تا ادامه دارد مردک بی‌رحم نگذاشت و نبرداشت یک کار گفت هزار و یک روز و هزار و یک شب بعد هم مثل آدم های پخته گفت اگر شهرزاد توی قصه ها توانسته هر شب یک داستان ببافد لابد تو هم می توانی به اندازه او طاقت بیاوری. این مرد مخش عیب کرده. من با این حال زار و پریشان چه شواهتی با آن شهرزاد پرچانه دارم. خانم خانم ها تنها کاری که می کرده این بوده که روی توشکچه های اطلسی بنشیند به متکاهای مخملی تکیه بدهد یک پایش را روی آن یکی پایش بیندازد و با دستش انجیر و انگور توی دهان حاکم ظالم بگذارد و قصه های دیوانوار از خودش در بیاورد کجای این کار سخت است؟ بیاید نصف کارهایی را که من میکنم کنم بکند آن وقت میبینیم بینیم هزار و یک شب کجا بود یک هفته نشده دومش را میگذارد روی کولش و در می رود. تا تمام شدن امتحانم هنوز خیلی مانده نمیدانم کسی می شماردشان یا نه اما هر روز یک خط روی دیوار می کشم تا حالا شده 624 چهل روز اولم توی این خانقاه در ای تنگ و کوچک و تاریک گذشت نمی توانستی دراز بکشی نمی توانستی به چپ و راست بچرخی مدام مجبور بودی چهار زانو توی وضعیت آماده باش بنشینی پشت سرهم می گفتند اگر از تاریکی ترسیدی اگر معدهت از گرسنگی سوراخ شد یا پناه بر خدا اگر از آن خواب دیدی و هوس های ناجور به سرت زد زنگ روی سقف را بزن و کمک معنوی بخواخ چهل روز در آن حجره ماندم حتی یک بار هم زنگ را نزدم نه اینکه فکر های بد به سرم نزده باشد خدا میداند فکر بد گلعی به سرم هجوم می آورد اما توی آنجای تنگ و ترش که انگشت کوچکم را هم به زحمت تکان میدادم، دادم فکرهای بد به چه کسی ممکن بود ضرر برساند همین که از چل خانه نجات پیدا کردم سر و کله سر پیدا شد مرا تحویل آشچی دده داد و گفت گوشتش مال تو استخانش مال من نگو چله توی مطبخ از همه بدتر بوده با این همه هرچقدر هم که جفتک انداخته باشم قاعده های آشپس را اصلا زیر پا نگذاشتم تا موقعی که شمس تبریزی آمد شبی که او آمد آشی دده چون از آشپزخانه جیم شده بودم بد جوری کتکم زد. هفت، هشت، ده تا ترکه ی آلبالو روی کمر و پشتم خورد کرد. بعد کفش هایم را برداشت و جلوه درگذاشت. گذاشت. طوری که کفش کفشها به طرف بیرون باشد. این طوری با آداب خانقا به من می گفت وقت رفتنت رسیده فرزند. دده آشپس با اخم و تخم فرمود، اگر دلت مطمئن نیست، بی خودی نخودت را خسته کن، مرا. رودخانه دم دهن الاق نمی آید. علاقی که می خواهد آب بخورد، خودش لب رودخانه می رود. فراموش نکن. تصوف هم دریای آب است برای کسی که می خواهد سیراب شود. در این وضعیت من هم اولاق حساب میشوم لابد. بود. راستش اگر شمس تبریزی نبود خیلی وقت پیش از اینجا رفته بودم. این درویش آواره بد جوری قلقلکم داده بود. فقط برای اینکه که درباره اش بیشتر بدانم توی خانقا لنگر انداختم. پیش از آن همچه درویشی ندیده بودم. از کسی باکی نداشت، جلوی کسی هم سرخم نمی کرد، حتی آشچی دده هم به او احترام می کذاشت. من هم پیش خودم تصمیم گرفتم، از این به بعد سرمشق من شمس تبریزی است. اوست که با آن جذبه اش، زبان تندوتیزش، سرکشیش و مزاج اسیانگرش باید مرشد من باشد. نه این استاد پیرو خرفت ما بله شمس تبریزی قهرمان من است بعد از آن که دیدمش با خود گفتم چرا باید درویشی سربزیر باشم شاید اگر پیش او بمانم و فیض ببرم من هم مثل شمس ششم و دلسی رو شورشی بشوم. این شد که فصل پاییز. وقتی فهمیدم شمس کلن میخواهد از خانقاه برود، من هم تصمیم گرفتم پشت سرش تا قونیه بروم. باید به بابا زمان می چه تصمیمی گرفتم. رفتم دیدم توی اتاقش نشسته و در نور چراغ نامه می نویسد. مرا که دید به نظرم نیامد خوشحال شده باشد. طوری به صورتم نگاه کرد، انگار وجودم خسته اش می کرد. پرسید، چه میخواهی شاگرد شاگردم قرمز؟ حرف را نچرخاندم و صاف و مستقیم خواستم را گفتم. میبینم بینم شمس تبریزی دارد می رود. من هم می همراهش بروم. ممکن است توی راه به کمک احتیاج داشته باشد. بابا زمان با دقت براندازم کرد برای کمک کردن به شمس میخواهی همراهش بروی یا اینکه از زیر بار وظیفه شان خالی کنی. امتحانت هنوز تمام نشده هنوز مرید شمرده نمیشوی پرسیدم مگر همراهی کردن با کسی مثل شمس هم نوعی امتحان به حساب نمیآید می از حد خودم تجاوز کردم اما برای قانع کردن پیر چاره دیگری نداشتم شیخ سرش را خم کرد معلوم بود دارد فکر می کند او که ساکت شد من هم سر جایم خوش زد. گمان کردم که الان است آشچیدده دده را صدا کند و به او بگوید مراقبم باشد غلط اضافه نکنم. کم مانده بود زهره هم بترکد. اما همچی چیزی نشد. بابا زمان با حالت غرق در فکر نگاه هم کرد و سرش را تکان داد. خیلی وقت از تو را می آزمایی. گرچه میوه بعد از درخت میآید. اما در حقیقت، اول میوه است این که فرد چگونه درویشی می شود، از زمان شاگردیش معلوم است این راه برای تو مناسب نیست فرسند از هفت جوانی که هر سال به خانقاه می آیند فقط یکی قادر است در طریقت بماند به نظرم مایعت برای درویش شدن مساعد نیست بهتر است سرنوشتت را جای دیگری جستجو کنی. نمیدانستم چه بگویم. آب دهانم را قورت دادم. بابا زمان صدایش را بلندتر تر کرد. و اما در مورد این فکری که کرده ای، یعنی همراهی با شمس تبریزی در سیاحتش باید در این مورد با خودش صحبت کنی با من. بعد از این اتمام حجت قاطع به در اشاره کرد و نام نوشتن را از سر گرفت اینطوری از خانقا اخراج شدم ناراحت بودم، قرورم شکسته بود اما از شما چه پنهان راحت شده بودم بالاخره مثل پرنده ها آزاد بودم